حکایت عاشق شدن پادشاه برکنیز و بیمار شدن وی و تدبیر در صحت او. بود شاهی در زمانی پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواس خیش از بهر شکار، یک کنیزک دید شه بر شاه راه. شد قلام آن کنیزک جان شاه، مرغ جانش در قفص چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید چون خرید و را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرک خر را در بود، کوزه بودش آب می بده. آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جم کرد از چپ راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهل است جان جانموست درد من دو خستم در ما نموست هر که در من کرد مرجان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش که جانبازی کنیم فهم گرداریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح است، هر علم را در کف ما مرهمیست گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر، ترک استثنا مرادم است، نی همین گفتن که آرز است، ای بسا ناورد استثنا به گفت، جان او با جان استثناست جو. هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شه از اشک خون چون جوی شد از غذا سرکنگبین سفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود، از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد، همچون نه